سلام و درود به همه شما عزیزان شنونده امیدوارم روز و روزگار بر همه شما خوش باشه امروز هم در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از قصه های زیبای کتاب قصه های پریان اسم این قصه قلبی از یخ بریم که با هم دیگه قسمت اول این قصه رو بشنویم یکی بود یکی نبود پادشاه و ملکی زندگی میکردند که بسیار نادان و ابله بودند. اما با وجود این خیلی زیاد به همدیگه علاقه داشتند. آدم های بددل و کینتوز از این عشق و علاقی اونها به همدیگه دل خوشی نداشتند و اون رو نشانه حماقت اونها میدونستند. اما این آدم ها در دربار زندگی نمیکردند. چون درباریان، در هر حال برای پادشاه و ملکه احترام قائل بودند و میدونستند که امور کشور باید با صلاح دیده پادشاه و ملکه اداره بشه در آن روزگار اعتقاد بر این بود که امور حکومت زمانی خوب پیش میره که بشه با پریان و افسونگران روابط خوبی برقرار کرد پادشاه و ملکه هم به هیچ وجه سهم شیرینی، نوارهای رنگارنگ و خوردریزهای مشابه مورد علاقه پریان و افسونگران را فراموش کردند و مهمتر از همه اینها فراموش کردند که اونها رو چه بد و چه خوب به جشن نامگذاری فرزندانشون دعوت کنند. ملکه نادان پسری به دنیا آورد اون چند ماه سخت مشغول تدارک لوازم مراسم نامگذاری شد و فهرست مفصلی از اسامی پریان و افسونگرانی تهیه کرد که قرار بود دعوت بشن اما کاملا فراموش کرده بود که خوندن اسامی درست مثل نوشتن اونها زمان زیادی میبره به همین علت موقع برپایه جشن پادشاه که وظیفه خوندن اسامی به عهده قرار گرفته بود تازه به انتهای دومین تومار رسیده بود که از خستگی به پتپت پت افتاد و گفت با کمال احترام از شما پریه فلان و فلان یا افزونگر بهمان درخواست می به من افتخار دیدارتون رو بدید و پسرم رو از فیض محبت خودتون بهرمند کنید. اوزا و احوال بدترم شد. چون براش خبر آوردند که پریانی که نامشون در اولین صفحه آمده بود به دربار اومدند و بی صبرانه در تالار بزرگ منتظر هستند و قرقر سر دادند که چرا کسی از اونا پذیرایی نمیکنه بنابراین پادشاه فیرس را کنار گذاشت و با عجل به تالار رفت تا به اونها خوشامد بگه بعد از اونها تقاضا کرد که برای فرزندش آرزوی نیکبختی کنند و کاری کنند که هیچ آسیب به اون نرسه از غذای روزگار در بین پریان یک پری بود که از سرزمینی دور اومده بود و با اینکه اسمش در صفحه اول فهرست بود کسی اونو نمیشناخت این پری بعد از سفری طولانی و خسته کننده با زحمت بسیار خودش رو به دربار رسونده بود و انتظار داشت که از اون پذیرایی شایستهای بشه یا حداقل به کمکش بیان تا از پشت شترمرغ بزرگش که با اون مسافتی طولانی رو پیموده بود پایین بیاد. اون با لحنی هشدارآمیز با خودش زمزمه کرد. عجب و راجیم میکنین. هرگز نمیتونی به پسرت افتخار کنی. هرچی دلت میخواد بگو. اون چیزی نمیشه جز یک کتولی خسبوش. آرزو میکنم که اون مانیکین بشه. اون همینطور به حرفاش ادامه داد و برای شاهزادی بخت برگشته چندین آرزوی ناخوشاینده دیگه هم کرد. اگر پری مهربان و دلسوز جنستا که اون قلم رو رو تحت حمایت خودش داشت مداخله نمی کرد، اون پری بدخواه نیکبختی رو از شاهزاده دور می کرد. مهربون مهربان پری ناشناس رو با زبانبازی و خواهش و تمنا آرام و وادارش کرد که دیگه حرفی بر زبان نگاره. بعد با اشاره به پادشاه فهموند که زمان هدایا به پریان هست. بعد از پایان مراسم همگی با حدیه هاشون مرخص شدند. به جز پریجنستا که میخواست به دیدار ملکه بره. پری به ملکه گفت عجب بساتی برا انداختی بانو؟ چرا با من مشورت نکردی؟ آدم ابلهی مثل تو همیشه فکر می کنند بی کمک یا راهنمایی میتونند کارهاشون رو پیش ببرند. ظاهرا با وجود لطفی که همیشه نسبت به تو داشتم اونقدر حق شناس نبودی که منو دعوت کنی پادشاه خودش رو به پاهای پری نیکندیش انداخت و گفت آه بانوی گرامی اصلا فرصت نکردم که به اسم تو برسم. ببین تا کجا رسیدم اینجا رو در فهرس علامت گذاشتم. پری گفت من دلخور نیستم. من کسی نیستم که به خاطر مشتی خورد ریز از کسانی که واقعا بهشون علاقه دارم دلخور بشم. اما در مورد پسرت. من اون رو از دست پری نامهربان نجات دادم. حالا باید اجازه بدید که اون رو با خودم ببرم و ازش مراقبت کنم. شما اون رو نخواهید دید مگر زمانی که تمام بدنش پوشیده از خز شده باشه. با شنیدن این سخنان مرموز پادشاه و ملکه شروع به گریه کردن. اونها در سرزمینی با آب و هوایی گرم و شرجی زندگی میکردند. حالا شهزاده پوشیزده از خز چگونه میتونست بیاد پیش اونها؟ اونها فکر میکردند که این وز نشانه یه های زیاد برگی فرزندانشونه. جنستا به اونها گفت که آرامش خودشون رو حفظ کنند. اون گفت اگر اون رو پیش شما بگذارم که تربیتش کنید، حتما اون رو مثل خودتون نادان بار میارید. حتی قصد ندارم بذارم کسی بفهمه که اون پسر شماست و در مورد خودتون باید بگم که بهتر حواستون رو بیشتر به امور حکومت بدید با گفتن این حرف پنجره رو باز کرد شاهزاده کوچیک رو با گهواره و هرچه در اون بود برداشت و در هوا چنان پیش رفت انگار که روی یخ سر می‌خوره و پادشاه و ملکه رو که سخت دل شده بودند ترک کرد اونها با هر کسی که پیششون میومد مشورت میکردند تا بفهمند منظور پری از این حرف که وقتی دوباره پسرشون رو میبینند که سراپا پوشیده از خز هست چه بوده و چه کاری از دستشون برمیاد اما کسی برای باز کردن این راست پیشنهادی نداشت فقط همگی بر این عقیده بودند که دیدن پسری با اون سر واقعا ترسناکه پادشاه و ملکه خودشون رو بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در مونده میدیدند و به همه جای قصر میرفتند تا به طریقی هم دردی دیگران رو به خودشون جلب کنند. در این بین پری شاهزاده خردسال رو به قصر خودش برده بود و اون رو به دست زن روستایی جوانی سپرد و افزونش کرد تا قبول کنه اون بچه هم یکی از فرزندان خودشه. به این ترتیب شاهزاده سالم و قوی بار اومد. اون بزرگ شد و مثل یک کشاورز جوان زندگی ساده‌ای در پیش گرفت. به نظر پری این بهترین کاری بود که میشل برای شاهزاده انجام داد. البته هر چه بزرگتر می‌شد، پری اون رو بیشتر پیش خودش نگه می داشت تا ذهنش مثل جسمش به خوبی پرورش پیدا کنه و ورزیده بشه. اما کار مراقبت از شاهزاده فقط در همین حد نبود. اون در نظر داشت که شاهزاده رو با سختیها و مشکلات آشنا و تشویقش کنه که به فراگیری دانش از همجنسان خودش روی بیاره پری به درستی میدونست که شاهزاده به کار و فعالیت زیاد نیاز داره چون اگرچه سال به سال بزرگتر میشد اما قدر نمیکشید و جزو ریزنقشترین شاهزادگان جهان بود البته با وجود این فوقالعاده فعال و خوشندام بود و روی هم رفته ظاهری بسیار زیبا و جذاب داشت به طوری که ریز نقشی اندامش خیلی هم مهم نبود شاهزاده کاملا آگاه بود که اون رو با نام مسخره کوتوله خسدار صدا خواهند کرد اما خودش رو دلداری میداد و با خودش میگفت باید با اتفاقی که روی میده کنار بیاد پری برای عملی کردن نقشه دست به شد. اون ماجرههایی شگفتانگیز و قریب ترتیب میداد و اونها رو در خشکی و دریا سر راه شاهزاده قرار میداد. ماجرههایی که خود شاهزاده همیشه قهرمان اونها بود. گاهی اوقات اون شاهدخت زیبارو رو از خطر بزرگ نجات میداد. گایی به خاطر رشادت هاش در سرزمینی به حکومت میرسید. بالاخره اون تصمیم گرفت که به جستجوی بخت خودش در کشوری دور دست بره. جایی که تولد ناخوشایندش اون رو از کسب افتخار و ثروت بر اثر شجاعتش باز نداره. پس یک روز با قلبی سرشار از بلند به سمت شهری بزرگ رفت که از قصر پری چندان دور نبود. در راه تصمیم گرفت در جنگل اطراف شهر شکار کنه. اون لباس ساده‌ای پوشیده بود و فقط یک کمان با چندین تیر و یک نیزه کوچک با خودش حمل میکرد. اون با این وضعیت کاملا به چشم میومد. موقعی که وارد شهر شد دید که ساکنان اونجا همگی به سمت بازار شهر میرن. اون افسار اسب رو کشید و بانوها همراه شد. خیلی کنجکاو بود که بفهمه چی شده. وقتی به محل مورد نظر رسید، چند نفر خارجی رو دید که با قیافه های عجیب و ناآشنا برای مردمی که اونجا جمع شده بودند، نمایش میدادند. اون با عجله راهش را از بین حاضران باز کرد و اونقدر نزدیک شد که تونست سخنان پیرمرد محترمی رو بشنوه که انگار سخنگوی اون گروه بود. بگذاری تمام جهان بداند کسی که بتواند به قله کوهستان یخ برسد، به عنوان پاداش نه سابلای بی همانند، زیباترین زیبایان از آن او خواهد شد، بلکه تمام قلم رو به حکومت شاهدخت را که به زودی ملک خواهد شد به دست خواهد آورد. پیرمرد ادامه داد، این هم فهرست اسامی تمام شاهزادگانی که شیفته زیبای شاهدخت شده و خودشان را به خاطر او به خطر انداختند، این هم فهرست کسانی که اخیراً حاضر شدند برای رسیدن به او دست به خطرناکترین اعمال بزنند. شاهزاده مانیکین یا همون کتولی خزدار بر سر شوق اومد و تمایلی شدید برای نوشتن اسمش در وجودش زبانه کشید. اما وقتی یاد موقعیت خودش و بیپولیش افتاد پاپس کشید. در همین حال بود که پیرمرد با به جا آوردن آدابی شایسته پرده رو از روی تصویر حسابلای زیبا که چند تن از ملازمانش اون رو حمل میکردند برگرفت. همین که نگاه شاهزاده به تصویر افتاد، دیگه درنگ رو جاگز ندید و با عجله پیش پیرمرد رفت و اجازه خواست تا نام خودش رو در فهرست اضافه کنه. اونها با دیدن اندام ریز، قد کوتاه و لباس ساده‌ی اون با تردید نگاهی به همدیگه کردند. نمیدونستند که اون رو بپذیرند یا نه. شاهزاده با مناعت تب گفت کاغذ رو به من بدی تا اسمم رو بنویسم غریبه ها اطاعت کردند اون بین ستایش زیبایی شاهدخت و نگرانی و تردیدی که در چهره های اون سفیران به چشم میخورد به دام افتاده بود مسترب بود و نمیدونست چه اسمی برای خودش انتخاب کنه در نهایت همون اسمی رو انتخاب کرد که با اون شناخته میشد پس در بین اسامی و لقبهای تراغ دیگران نوشت مانیکین و همین باعث شد سفیران شاهدخت قاه قاه خنده سر بدند. شاهزاده فریاد زد آدمای بدبخت بدونید که روزی در حضور صاحب این تصویر زیبا سرتون رو قطع میکنم. یک دفعه به یادش اومد که اصولا مانیکین اسمی خنده داره و اون هنوز فرصت نکرده تا به این اسم اعتبار و وجاهت بده. پس آرام شد و برای یافتن راه سرزمین شاهدخت شروع به پرسجو کرد. با اینکه از ته قلب آمادگی داشت احساس میکرد که مشکلات زیادی سر راهش هست. با این حال از مشرو جزم کرد و بدون اونکه از پری اجازه سفر بگیره که ما مانعش بشه بلافاصله فاصله ره سپار شد. کسانی که مانیکین را در شهر خودشون میشناختند از این اقدام شجاعانش بر سر زوق اومدند و با نقل اون در همه جا، قاه قاه میخندیدند تا اینکه خبر به گوش پادشاه و ملکه نادان هم رسید اونها حتی بیشتر از دیگران خندیدند و اونقدر گرم خنده بودند که اصلاً به فکرشون هم نرسید که این مانیکین جسور پسر خودشونه در این اسنا شاهزاده در راه سفر بود اما جهتی که در پیش گرفته بود اصلاً امن و راحت نبود به اون گفته بودند برای رسیدن و فتح کوهستان یخ در 400 فرسنگی شمال کوه قفقاز فرمانها و دستورالعمل‌های لازم را دریافت خواهی کرد دستورهایی برای پیشروی بهتر برای مردی که از کشوری نزدیک به جایی میره که امروزه ژاپن نامیده میشه اون به سمت شرق میرفت پا به شهرها نمیگذاشت مبادا که مردم به اسمش بخندند چون همونطوری که خودتون میدونید اون تجربه که سفر نداشت و هنوز عادت نکرده بود از لطیفه هایی که گفته میشه حتی اگر در مورد خودش هم باشه لذت ببره. شبها در جنگل میخوابید. اول از میوه های خود رو میکرد. اما پری نیکدل که مراقبش بود نمیخواست اون هرگز گرسنه بمونه. پس هنگامی که در خواب بود اون رو با انواع غذاها و خوراکیهای خوب تغذیه ت چنانکه وقتی که بیدار میشد در تعجب بود که چرا اصلا گرسنه نیست. پری اون رو با انواع مختلف ماجراها و حوادث روبرو میکرد تا شجاعتش رو امتحان کنه. شاهزاده در تمام ماجراها با موفقیت پیروز می شد و فقط در آخرین نبردش با هیولای هر که کمی شبیه ببر بود از بخت بعد اسبش رو از دست داد. با این حال چیزی اون رو از ادامه سفر باز نداشت. اون پیاده میرفت تا بالاخره به بندرگاهی رسید. در اونجا قایقی پیدا کرد که مقصد قایقرانش با اون یکی بود. سوار قایق شد و به همراه دیگر مسافران به سفرش ادامه داد. بعد از چند روز طوفانی شدید درگرفت گرفت که قایق رو در هم شکست. شاهزاده شنا بلد بود و تونست خودش رو نجات بده. بعد از طی مسافتی طولانی چشمش به خشکی افتاد و خودش رو به اونجا رسوند. خشکی جزیری متروک بود. اون با ماهیگیری و شکار زندگی رو میگذروند و همیشه امیدوار بود که پری اون رو نجات بده. هر روز با اندوه به دریا نگاه می کرد تا اینکه یک روز چشمش به قایقی بزرگ با ظاهری عجیب افتاد. قایق به طرف ساحل شناور بود. بعد وارد جویباری شد و در همون جا به گل نشست. شاهزاده مانیکین با شور و شوق برای وارسی به طرف قایق بزرگ دوید و با کمال تعجب دید که دیرک و دکلهای قایق همگی از هم جدا شده و پوشیده از برگهای انبوه هستند انگار که قایق شبیه جنگلی کوچیک شده بود کسی روی عرشه نبود خلوتهٔ عرشه شاهزاده رو به فکر فرو برد شاهزاده ها رو کنار زد و به سمت دیگه پرید و ناگهان با سرنشینان کشتی روبرو شد که بی حرکت بر زمین افتاده بودند. آنها انگار که مردگانی بیش نیستند، تقریبا مثل درخت خشک شده بودند. به نظر می رسید که روی عرش رشد کرده یا مثل دکل شدند یا در اطراف کشتی به عرش چسبیدن یا تبدیل به چیزی شدند که به اون دست زدند. همه این اتفاقها به خاطر افسونی بود که اونها را گرفتار کرده بود. دل مانیکین از دیدن این صحنه دردناک به درد اومد و با تمام توانش تلاش کرد تا نجاتشون بده اون با نوک تیز یکی از تیرها دست و پاشون رو به آرامی از جنگلی که محکم به اون چسبیده شده بودن آزاد کرد و اونها رو یکی پس از دیگری به ساحل کشوند در اونجا بدنهای خشک شدهشون رو مالش داد و با مقدار زیادی از انواع گیاهان دارویی روی زخمهاشون مرهم گذاشت حال اونها بعد از چند روز کاملا خوب شد و سرحال شدند و قدرت کافی برای روندن کشتی پیدا کردند. اما شما مطمئن باشید که پری مهربان، جنستا در درمان شگفتنگیز اونها نقش زیادی داشت. اون حتی این فکر رو به سر شاهزاده انداخت تا اون گیاهان جادویی رو بر بدن کشتی بماله. قایق کاملا تمیز شد. با اون سرعتی که گیاهان رشد کردند، اگر کمی دیرتر می‌جنبید کشتی کاملا به جنگل تبدیل میشد. قدردانی درباریان از شاهزاده حد و اندازه نداشت. اونها به شاهزاده گفتند که با کمال میل حاضرند شاهزاده رو هر جا بخواد ببرند. موقعی که مانکین از اونها درباره اتفاق غیرعادی که بر سر خودشون و کشتیشون اومده بود سوال کرد، اونها به هیچ طریقی نمیتونستند توضیح بدن. فقط گفتند موقعی که در امتداد ساحلی پر از درخت حرکت میکردند تندبادی ناگهانی از سمت خشکی به سمت اونها وزیدن گرفت و اونها رو در ابره متراکمی از قبار در هم پیچید بعد از اون هر چیزی در قایق که از فلز نبود گونه که شاهزاده دیده بود بی حرکت و سنگین شد بالاخره خودشون هم هوش و حواسشون رو از دست دادند شاهزاده، مانیکین عمیقا مجذوب این داستان شده بود. اون مقدار زیادی قبار از کف قایق جمع وری کرد. اون به دقت مراقب این مقدار قبار و خاک بود. چون فکر می با خاصیت عجیبی که داره شاید روزی به دردش بخوره. خب دوستان، اجازه بدید شاهزاده رو با دوستانش در کشتی تنها بگذاریم و ادامه سفر شاهزاده رو در قسمت بعدی دنبال کنیم.